ایکیو سان در اصل پسر یک امپراتور بود. داستان این مجموعه الهام گرفته از زندگی راهب بودایی ایکیوه. در دوره حکومت شوگون‌ها، حکومت از دست امپراتورها خارج میشه و مادر ایکیو به اجبار به همسری یک شگون در میاد. برای همین ایکیو رو به معبد می‌فرستند. این کودک در معبد خیلی زود پیشرفت میکنه و در همه کار خلاقیتش رو نشون میده ایکیو هر زمان که میخواست تمرکز کنه دو انگشتش رو روی سرش میچرخون و بعد شروع به فکر میکرد داستان زندگی ایکیو و افسانههای پیرامونش یکی از داستان مورد علاقه مردم ژاپن و کشورهای دیگه جهانه و تا به حال یک سریال و دو کارتون ازش تهیه شده ایکیو... مردی کوچک. آه خب. جلوی تو <تصفيق> ماتشی در همون زمان حاکمی که از طرف پادشاه کشور مسئول برقراری ادالت در نقاط مختلف کشور بود به سرزمینهای مختلف کشورش میرفت در این راه کایکو و تسوکه همراهش بودند و در راه سفر چندین نفر دیگه هم بهشون میپیوندند از جمله سگارو و سگش زمبه که وجود خارجی نداشته و تنها با انگیزه جذابتر کردن ماجراهای این سریال انیمیشنی به سناریوی داستان‌ها اضافه شده. این گروه به هر شهری که می‌رفتن، هویت خودشون رو از دیگران مخفی نگه می‌داشتن تا زمانی که تسوکه آرم مخصوص میتیکومان رو نشون می‌داد و میگفت: همتون توجه کنید. این علامت مخصوص حاکمه بزرگه. می‌دونید با چه طرف هستین؟" با معمور مخصوص حاکم بزرگ میتی احترام بگذارید. حالا هر سال اول تابستون که میشه شهر کوچیک میتو پر میشه از آدمهایی که از سر تا سر ژاپن به اونجا میان تا چهره خودشون رو شبیه به میتو که ما به اشتباه به اون میتی میگیم یا دستیارهاش تسوکه شمشیرزن و کایکوی پهلوان درست بکنن اسم شهر میتو با حاکم معروفش در تاریخ ژاپن موندگار شده. شرق دور ن دستین از رون تا رنگ رنگ زنگ زن. اما خورده فلان شو پاشتابونه جا شو یه حمومه بیو کی چی بخنده جنبانی اونه یه به دنیا یا اومده همسایه یه این بر گوچ پارره یکی از اززیزش مثل بارون میباره یکی دست پشو تو ی دست بشی کشش میناره آرهوا این بروی یکی میاد یکی میره یکی چشم هنوزم میداره بود که زیره روی ببر. آخه زندگی همینه قصه یه سنگ و سر قصه یه گریه و خنده قصه شادی و غم قصه یه با اون اپایین و قصه یه نیادگر آره این در رو یکی میاد یکی میره یکی چشم شن و زمین به و دو رو روی که مسافر جاده یه روزه کار میشی یه روزی مایزی و یه روز دیگه دهار میشی. کاراگاه گجت یک کاراگاه فراموشکار حواسپرد و شلخته بود که مثل روباتها ابزارکهای عجیب و غریبی توی بدنش کار گذاشته شده بود و میتونست از اونا کمک بگیره شخصیت دشمن کاراگاه در این مجموعه دکتر کلاو بود که رهبری سازمانی شرور به نام ام رو به عهده داشت پسری به نام توشیشان در کودکی بنا به دلایلی از خانواده و مادر خودش جدا میشه و با افراد ولگرد و خیابونی بزرگ میشه در آینده به او الهام میشه که میتونه سه آرزو داشته باشه آرزوی اول و دوم او ثروت و قدرته بنا به بیکفایتی توشیشان هر دو رو از دست میده و نوبت به آرزوی سوم میرسه که انسانیت و مردانگیه بدین ترتیب تو شیشان که سه سال بیشتر نداشت تنها ماند. او مدتها برای پیدا کردن مادرش به جستجو پرداخت اما اثری از او نیافت. توشی شان جایی را که داده بود پول پول توشیشان یک شبه جوان آن شهر شد پسرهای ژاپنی با شروع فوتبال در محلات و تشکیل باشگاه ها و تیمهای کوچیک به بازی با هم می پرداختند. شخصیت اصلی انیمیشن فوتبالیستا سوباسا بود که با تشویق عموش بعد از طی کردن پله ترقی به جام جهانی رفت از خاصیت‌های سوباسا این بود که دو سه متر میپرید هوا و وقتی تو دلش فکر می‌کرد بقیه میشنیدند. خلاصه بعد از کلی معطلی که سوباسا ضربه رو بزنه، یه دفعه راوی داستان میگفت ادامه این قسمت هفته‌ی آینده. و ما هم باید یک هفته منتظر می‌موندیم که آیا اون ضربه گل میشه یا نمیشه. سوباسا هم تا یک هفته اون بالا معلق می‌موند. کپول با گویندگی حمید جبلی رو یاد دارید؟ گوشدراز، دمدراز، دنباریک، نارنجی، سرمایی، عینکی، خوشخواب و آقای معلم همگی در برنامه عروسکی شاد و خاطر انگیز مدرسه موش جی جی جی بول، سر برسه بوم بول، جی جی جی بیا بیا، ف به ف بها، هشت هشت هشت، هی بیا بیا، جی جی علی کوچولو اسم سریالی بود که در دهه شست از تلویزیون پخش می اون زمان کشور عزیزمون درگیر جنگ بود شخصیت اصلی این مجموعه پسر خوردسالی به اسم علی با بازی امید آهنگر بود که پدرش به جبهه رفته بود و با مادرش توی خونه کوچیک با حیات نقلی زندگی میکرد. این سریال به شیوه فتو انیمیشن ساخته شده بود. یعنی از شخصیت های اصلی داستان عکس گرفتند و تمامی عکس رو روی تصاویر پس زمینه که نقاشی بود قرار بدند. ma shuko io dori دهکده ای توی جنگل بود که شخصیت مثبت و دوست داشتنیش در کنار شخصیت منفی و خرابکارش با هم زندگی می کردن. هنوزم ماسک که از شخصیت این کارتون به صورت مقوایی ساخته میشد و به فروش می رسید رو یادمونه. هنوزم دنپایی های سبز و قرمز و نارنجی که عکس پسر شجاع و خانم کوچولی و شیپورچی روش بود و یادمونه. داستان کلاسیک و استورهی رابینهود داستان راهزنان مردم دوست بود که از ظلم و ستم پرنس جان به تنگ اومده بودن و به رهبری روباهی دوست داشتنی به اسم رابینهود و برای رفاه مردم از شاهان و اشراف مغرور می و به مردم محروم کمک می تی تی ڈا ٹی بیشتر دوست داشت این کار برازندہ چه نریست پایبل صدای میکیدن چاستت خیلی بلند اگر اجار رو میتونم وقتیم نوکیز شما رو بخابونم این کار رو نکن این کار رو نکن نقدر میخواستم کمک دیگرار اره تو بمید چشت؟ افتیه احمد بس دیگه هیس، اگه یه دفعه دیگه هیس، هیس بکنی باید تا نتیم پیاده رفته. ما راه و افیه هر گز رف نمیرن. نی هزین. لوقه خوششانس یا همون گاف چرود روبه غروب کابوی تنهایی بود که به جز اسب روشن فکرش جالی جامپر و یک سگ دست و پا به اسم رانتامپلان. که ما ایرانی ها به اسم بوشوک میشناسیمش، هیچ همدم دیگه ای نداشت. کاروارش هم این بود که در دهکده های پرت و دور آمریکا دنبال مجرمان سابقه دار و فراری بگرده و اونها رو به چنگال قانون بسپاره. لوک خوشانس بلی کوچیکه از اینکه داکتورا رو تحویل دادی ممنونم قابل نذاشت رئیس دیگه تا امالشو ندارم آخو دست دارم برداری این بریایی آقیم نه یه آدم شریف بنا نمه بردی باور هیچ دوست ندارم ببینم یه مرد گریه میکنه ولی درباره این یکی استثناء آقای نیگاش کن این مرد مهربون باز یه روز بد دیگه ای داشته چیزی که لازم داره دوستی با یه سگه از بس که برای رد شدن از اینجا معطل شدم یادم رفته که کجا میخواستم برم اه ولی اونو یادمه دوست قدیمی خودم لکه خوشانس. باید برپرم پشت است ترافیک تر میشه جلیل به خصوص روی پشت من <تصفح> بابرم نمیشه بازم اون سگ نگهبان آواره بوش بگه نکنه تو هم دنبال نفتی نه من دنبال یه خورده ی اونجه تازه است جیمبو هواپیمای کتولهی بود که در حال گذر از مزاره پایین می و گوسفندها، گاوها و حتی جوجه کلاخ یک صدا فریاد می زدن. براتون تشته میگم قشه یه میو, میو که مثل حال گلب ها وله کن اون نیست را کنه اوننا شکل گلبان راکنه کارای عجیب غریبی میکنه ثال شوده باز های یه هوی خونه عوض میشه شیره رو موش میکنه موشه رو شیر میکنه شش تر رو میکنه فیلمور چه میکنه خوشا استخم میکنه که ای وقتا خودشون مثل پرنده میکنه میره خال آسمو. برای پرواز نداره ولی پرواز میکنه با خوبا ملایم و خوشرفتار بدان رو دوست نداره کسی بگم اسم قسمون چیه نه با خودم گمی و میو عوض میشه خوب گوش کن بد جوابت مبصد چهار ساله کلاس من به من بگو بدونم هر آدمی چند دونه انگشت توی دستش داره آقای جزه هلن نکن دست و گم ها مگم بده آقای جزه الان میگم دست و پاها ها مگم نکن آقای جزه جواب میدم زودتون سریع جواب میدم هر آدمی تو دستش یازده تا انگشت داره هر آدمی تو دستش 11 تا انگشت داره. آخ چطور همش چیزی ممکنه؟ ما چه 4 ساله کلاس. آقا اجازه، جواب میدم، زوتم سریع جواب میدم. 1098 تو هفته 6، 1098 تو هفته با 5 تا میشه 11 تا. 1098 تو هفته 6 با 5 تا میشه 11 و 1098 هفته 6 با 5 تا میشه 11, 11, 11 تا. چطور ممکنه بچه ها خدا سلام سلام به شما بچهای خوب عزیزم امیدوارم خوب باشه و منتظر مسابقه از مدرسه تا مدرسه این هفته ما باشید. نبوستون من کوه کشناز بگی نگی رو به فراز اون طرف کلمیوس تو کوچه یسوع تو گودال اون ور سرا ما به بند نه I'll see